اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا وعاله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم ارز سلام دارم روز به خیر ارز میکنی انشاءالله که به لطف الهی از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که با انایت باری تعالی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور بشت. بحث ما در نوع سوم انشاء طلبی استفهام بود گفتیم استفهام طلب فهم متکلم از مخاطب نسبت به چیزیست به شرط که قبل از اینکه استفهام کنه براش معلوم نباشه واقعا طلب فهم بعد گفتیم که استفهام این معنای حقیقیش اگر این معنا تعریف صادق نبود استفهام میشه معانی مجازیش و اون رو ما با دری نمیفه بعد گفتیم که استفهام با عدواتی صورت میگیره عدواتش هم دو نوعه حرف هست و اسم حرف دوتاست همزه و حل و همزه اصل است به خاطر همین هم در تصور سوال از مفرد میاد که جوابش با تعینه و هم در تصدیق که سوال از نسبت و اسناد و جمله است کلامه که جوابش با نعم و لا اما اسماع استفهام همشون گفتیم اسمند محل اعرابی دارد و گفتیم همشون مبلی هستند جز ایو که دائمن اضافه است و اون معربه و اگر از مزافون علیش هم گاهی قتع بشه با قرینه تنوین عوض اون مزافن علی و این اصمای استفهام گفتیم همشون برای تصورند همه اونها برای تصورند یعنی سوال از مفرد مثلا من برای سوال از زول اغول یعنی چه چیزی ما برای غیر زول اغول یعنی چه چیزی حالا اون ما رو گفتیم دو جوره یکی مای شرح اسمی و یکی هم ماهیت مطلق المصنف حالم سابق گفتیم باز دو قسمه یه حل بسیطه داریم که سوال از هست و نیست میکنه و یه حل مرکبه داریم که اون از عوارض وجود سوال میکنه یعنی یه چیزی هست حالا سوال میکنه رنگش چیه وزنش چیه شکلش چیه و غیر از عوارض اون وجود سوال ما رو گفتیم دو قسمه مایه یه که لفظ رو توضیح میده لفظ بیان میکنه ما یه حقیقت المسما که تعریف اون مطلب رو بیان میکنه وقتی میگه چیست یعنی تعریف کن اون یکی رو میگه وقتی چیست یعنی لغتش رو برای معنا کن کلمهش رو معنا کن شرخل ما درس رو به طور کامل دوباره براتون دوره کردم حالا با توجه به این موضوع درست شد ما قصد این رو داریم که با قول خودمون مبحثمون رو بخواهیم. حالا درس سوم استفهام معانی مجازی استفهام معانی مجازی استفهام که معنای حقیقیش نیست نگاه کنید این درس رو بسم الله الرحمن الرحیم المعان التی تستفاد من الاستفهام بالقرائن معانی که استفاده میشه از استفهام واسطه قرائن المعان اللتی تو استفاد من الاستفخام بالقرائه المعان اللتی تو استفاد من الاستفخام بالقرائه الامثلت دقت کنید معنای اول معنای اول. معنای مجازی استفهام بهش میگن استفهام در معنای نفیه استفهام در معنای نفی که گاهی اوقات که گاهی اوقات توی بعضی از تعبیرها بهش میگن استفهام انکاری حالا بهترینه که چون بعدا انکاری رو ما بیان می‌کنیم بهترینه که اینجا بهش بگن استفخام در معنای نفی حالا اگر استفخام در معنای نفی بیاد خود چرا خود نفیو نمی آرن؟ استفخام در معنای نفی که معنای مجازی به کار بره تحکیدش بیشتره تأکیدش بیشتره, نه؟ تأکیدش بیشتره. استفهام در معنای نفی تاکیدش بگید از خود نفیه که بیارید بیشتره حالا مثالم که بزنیم شما مثال های فارسی را مطابقش بکنید میبینید دیگه که ما خودمونم وقتی این استفهام در معنای نفیه به کار میبریم درست شد یا ما میگیم آقا آدم با سواد و بی سواد یکی نیست نفی یهوار بار آیا آدم با سواد و بی سواد یکی آیا با سواد و بی سواد یکی یعنی یکی نیستن این استفخام در معنای نحف قدرتش چیه؟ لذات تو قرآن میبینید یه حلی است و لذینا یعلمون و لذین لا یعلمون حلی است اولذین یعلمون ولذین لا یعلمون خدا سوال میکنه خدا که استفهام شریری نیست که خدا که همه میدونه لذا وقتی که سوال میکنه حلی است اولذین یعلمون ولذین لا یعلمون آیا اونهایی که چیزی سرشون میشه با اونهایی که چیزی سرشون نمیشه مساوی یعنی قطعاً مساوی نیستند یه مثال من زدم مثال دوم رو نگاه کنید و قال البهتوری هل ده الا قمرتون و انجلاؤها و الا زیغتون و انفراجوها یعنی و انفراجوها وشیکن. که به غرینه و شیکنه تب میگه حل در آیا این روزگار الا غمرتون آیا این روزگار جز گردابیست و انجلاها و شیکن یعنی سریعا و اینکه زود همین گرداب باز باشه گرداب اگر دیده باشید یک جای آب میچرخه میچرخه می یه چیزی میافته اون جایی میگردونه میگردونه میگردونه یه دفعه بر اساسه نیروی گلیز از مرکز میره بیرون سریع دور میشه میگه این روزگار این روزگار نیست جز گردابی و گشوده شدن اون گرداب به طور سریع و این لازیقتون و این روزگار نیست مگر یک تنگهی تنگنایی و انفراجوها و گشوده شدن و باز شدنش درست شد و شیگر مثل اینکه انسان میافته تو منگنه تنگنا فشار میاره اما یه دفعه باز باشه میگه روزگار اینه همیشه سختیش میاد تا نگاه میکنی میبینی سریع باز شد این نمه ده رو الا غمبتون از ده رو خبرش و الا زیغتون اتو به جای قمرت روزگار این ونجلاوها اتو به جای قمره وانفراجوها انفراجوها اتو به جای زیغه دنیا گرداب است و گشوده شدنش تنگناه هست و باز شدنش جزینم نیست. ببینید اینجا این نوع استثناء چه نوع استثنائیه؟ استثناء مفرق از ده رو مبتدا بمرتون خبرش و شما تو نه خوندید استثناء مفرق در کلام منفی واقع میشه یا چیزی که شبه نفیه که همین استفخان باشه خود همین استثنای مفرق اینجا قرینه لفظیست حالا غیر از قرینه معنوی قرینه لفظیست که استفهام در اینجا به معنی نفیه وده این استثنای مفرق من یه آیه مثال زدم هل یستقی یعلمون و لا اون قرینش معنوی بود که خداوند استفهامش حقیقی نیست پس اینجا به قرینه چرا خدا این سؤال رو کرده میگیم استفهامه در معنای نفیه برای تک اما مثل این باز تو خود قرآن هم داریم مثل اینکه که میگه حل جزاول احسان الا جزا جزا احسان حل جزاول احسان اه اه احسان حل احسان آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی کردنه یعنی قطعا پاداش نیکی کردن نیکی کردنه جزون نیست استثناء مفرره مثل همین خل جزاء الا احسان الا الاحسان القمرتو تو پایین میگه شدت تو معنا کرده یعنی سختی معنای لازمشو کرده و یعنی زوالها ها وشیکن یعنی سریع خب این تمام شد دو میخوانم درست شو دورو رو میخوانم براتون خوب نگاه کنید که <تصفيق> بهش میگن استفهام انکاری انکاری ولی استفهام انکاری دو نوعه استفهام انکاری دو نوعه یکی انکار ابتالی یا داشت میکنید یکی انکار ابطالی ابتالی, ابتالی. یعنی باطل کردنی انکار ابطالی و دیگری انکار توبیخی استفهام انکاری دو نوعه انکار ابطالی و انکار توبیخی حالا منم بیرون میگم مثالم میزنه بعد میریم داخلش استفهام انکار ابتالی اونه که میخواد اینو بگه ما بعد عدات استفهام واقع نشده بعد عدات استفهام از نظر متکلم واقع نشده و مدعی وقوع آن کاذب است و مدعی وقوع آن کاذب است و مدعی وقوع آن کاذب است پس ما بعد عداد استفهام بگو واقع نشده ما بعد اعداث استفهام واقع نشده از نظر متکلم و از نظر متکلم مدعی وقوع آن کاذب است اگر کسی ام مدعی وقوعش باشه کاذب دروغ میگه شما تعالی نشده یک کسی به شما بگه اینطوری آیا من پشت سر تویی کردم آیا من پشت سر حرف زدن؟ زدم یعنی چی یعنی من پشت سرتو حرف نزدم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسیم مدعی باشه که من پشت سرت حرف زدم، دروغ میگه. انکاریه یعنی همچین چیزی نشده ابطالیه یعنی اگر کسی مدعی وقوعش باشه، دروغ میگه. اینو میگن انکار چه چی, چی؟ بگید؟ ابطالی. ما بعد از ادات استفهام واقع نشده و اگر کسی مدعی وقوع آن باشد از نظر متکلم دروغ گفت از نظر متکلم دروغ گفت که تو قرآن میگه الہ البنات ولکم البنون آیا خدا دختر داشته باشه چون مشرکین معتقد بودن خدا دختر داره ملائک دختران خدا ولی ما پسرم داریم خودشون خدا ما پسرم داریم خدا میگه آیا خدا دختر داشته باشه و شما پسر یعنی این اعتقاد شما درست نیست هرکی هم مده این اعتقاده الهول بنات الهول بناتو ولکومول البنون آیا برا خدا دختر و برا شما پسر باشه؟ خب این استفهام انکار ابطالی، اما استفهام انکار توبیخی چیه؟ استفهام انکار توبیخی اینه که از نظر متکلم که از نظر متکلم ما بعد استفهام واقع شده ما بعد استفهام واقع شده و از نظر متکلم فاعل اون فعل فائل اون فعلی که واقع شده معلوم است مورد ملامت است مورد توبیخ پس انکار توبیخیه یعنی چی؟ انکار یعنی نباید واقع می شده ولی واقع شده توبیخیه یعنی چی یعنی حالا چون واقع شده مورد توبیخ بش میگن چی بگید انکار توبیخی تعریفش چی شد ما بعد اعداث استفهام از نظر متکلم واقع شده و فائل آن و فائل آن مورد توبیخ است و فائل آن مورد توبیخ است ما بعد عدد استفهام واقع نشده یا واقع شده واقع شده و فائل آن مورد توبیخ است مثل که مثلا یک کسی به پدر خودش دوائم بکنه شما میبینید بگید آیا این حرفا رو داری به پدرت میسنید؟ ببین آیا این حرفا رو داری به پدرت میسنید؟ مجرد سوال نکردید از اون بگه بله میکنم سوال نکردید بفهمید داره میزنه این حرفا رو بلکه شما دارید میگید این حرف ها یه رو زدن تو داری به بابات میزنیم این واقع شده است و به خاطر همین تو مورد تو خب استفهام انکار تالی رو گفتم انکار توبیخی رو هم گفتم حالا دور رو میخونم شما ببینید کدومشه خب توجه کنید چیه رو, رو معنام کنم الان دیگه فهمیدید قال عبودتیب فلمدی آقای عبودتیب متنبی در مدح گفته اتل تمثل اعدا بعد اللذی رعد قیام دلیل او وضوح بیان تل تمثل یعنی تطلب آیا طلب میکنند درخواست میکنند دشمنان تو دشمنان بعد اللذی رعت یعنی بعد اللذی رعت خو. بعد از این همه موفقیت و پیروزی که از تو دیدند این همه شجاعت که از تو دیدند بعد اللذی رعت خو. بعد از اینهایی که دیدند آیا طلب میکنن دشمنان قیامه مفعول تلتمسوش قیامه دلیل و وضوح بیان اقامه یک دلیل آ یا یک بیان واضح او آیا دنبال بیان و دلیل بازم هستن یعنی وقتی دشمنان این همه ادله و برهان بر موفقیت تو دیدن آیا بازم دنبال دلیل و برهان هستن یعنی <متلا> <متلا> ببین تو چه کردی همه رو سر جاشون نشوندی همه رو به قول خودمون شکست دادی خدا با تو بود بعد از اینا همه این اتفاقات که از جانب تو افتاد بازم دشمنا آیا دنبال دلیل و مدرک هستند که تو قوی هستی و تو بزرگی و پیروزی <متلا> این کدومشه انکار ابتالی یا انکار توبیخی کدومه؟ شعر رو معنا کردیم انکار ابتالی و انکار توبیخی هم گفته آیا درخواست میکنند دشمنان بعد از این همه عدله و براهین که به نفع تو هست که دلیلی یا بیان روشنی بیاد کدومشه؟ انکار ابتالیه یا انکار توبیخیه قطعا انکار ابتالی است یعنی دشمنان هم دیگه نشده، تو توبیخی نیست دشمنان هم دیگه قانه شده یعنی بعد از این همه دلیل و برهان که اومده دیگه دشمنان هم دنبال دلیل و برهان نیستن بر موفقیت تو اگر کسی مدعی باشه دشمنان قانع نشدند و دنبال دلیل و برهانند دروغ می آیا دشمنان هم دلیل و برهان میخوان؟ یعنی اونها هم دیگه نمیخوان. چرا؟ چون همه چیز بگید روشن شده. اگه کسی بگه دشمنان هنوز قانع نشدند بر بزرگی و عظمت تو دروغ میده. این کار نگاه کنید. یک گولا. حلیت رو با اعدا و که ببین اینجا داره با حل میگه. اون بالا همزه بود. برای تصدیق اینجا حل رو آورده. حالی طلبوا اعداؤك دلیلا على ان الله يريد ان يذل امرك هو الغالب بعدما رعوا العدله على ظالم ما یا طلب میکنند دشمنان تو دلیلی رو بر اینکه خداوند اراده کرده که امر تو رو غالب قرار بده بعد از اینکه دیدن همه ادله و براهین رو برین آیا بازم دشمنان دنبال دور و دلیل یعنی که کسی نیست دشمنان هم قانع شدند و اگر کسی چنین ادعایی کند دروغ بیک خب حالا اینو فهمیدید که انکار ابتالی بود نگاه کنید میخوانم مثال بعد رو سر قائل بختوری، بختوری میگه در مدح خلیفه، بختوری در ماده خلیفه میگه میگه تا آمماهم جودن، الستا ام هم جودن و از کاهم اودن و امزا هم حسامر به خلیفه میگه آیا تو نیستی شاملترین این مردمان از جهت جود و کرم تو جود و کرمید از همه شاملتره همه رو فرامید و از کاغم اودند و آیا تو پاکترین مردم نیستی از جهت چارچوب عود یعنی اون تنه تو از جهت اون بندی اصلی از همه اینها پاکتر نیستی و امزاهم حساما حسام یعنی شمشیر تو از لحاظ شمشیر برندهترین اینها نیستی یعنی شجاترینشون نیستی یعنی آیا تو شاملترین از جهت جود پاکترین از جهت جسم و قاطعترین از جهت شمشیر یعنی شجاعترین نیستی به خلیفه میکنی این نگاه کن از کاهم هم اودن اودن تمیزه یعنی هم جسمه. خب این علسته این چی رو مخواد بگیم کتاب نوشته این برا تقریره تقریر یعنی تثبیت تقریر یعنی تثبیت یه معناش تقریر یعنی اقرار گرفتن اینم یه معناش تقریر یعنی گزارش دادن اینم یه معناش این کدومشه؟ تقریر تو اینجا به معنای اقرار گرفتن وادار به اقرار کردن گفته این مثال مال تقریر ولی درست نیست مثالش درست نیست استفهام برای تقریر داریم ولی این مثالش نیست استفهام تقریری تعریفش اینه تعریف استفهام تقریری متکلم قصد دارد به مخاطب بگوید به ما بعد همزه به ما بعد همزه یا به ما بعد عداد استفهام خب اقرار نما یعنی ما بعد عداد استفهام اگر مثبت اون مثبت رو اقرار کن اگر منفی منفی رو اقرار کنه اینا میگن استفهام تقریری یعنی متکلم میدونه خودش به مخاطب میگه که مخاطب و وادار به اقرار کنه به مخاطب میگه که مخاطب و واداره به اقرار کن مثل اینکه که قاضی تو دادگاه به اون شخص متهم میگه آیا شما بودی که از دیوار خونه بلانی بالا رفتی و میدونه اون نوشته تو بازفرسی هست جلوشه قصدش اینه که اون تو دادگاه بگه بله من بودم از دیوار بلانی نمیگن استفاده تقریری یعنی متکلم مخاطب رو به ما بعد عداد استفخان وادار به اقرار بود به ما بعد عداد استفخان وادار به اقرار بود نسخیم یا آیاره نگاه کنید حضرت ابراهیم به قوم خودش که اموش و دیگران بودند که بود پرست بودند به اونها میگه چرا این بودها رو میپرستید؟ نپرستید بعد هم اونها خلاصه با حضرت ابراهیم در میافتند و حضرت ابراهیم هم بنا رو میگذاره برای اینکه بت‌ها رو بشکنه. روز که اونا از شهر میرن بیرون، هیچ کسی تو شهر نیست، به عنوان که مریض داخل شهر میمونه، توان رفتن نداره. بعد هم میره و بت‌ها رو همه رو در هم میشکنه، اون طورا میندازه گردن و اون بتو بسخت. بعد اونها از جشنشون که برمی‌گردن می‌بینن بودکداشون همش خرد و خمیر شده تبرم گردن این پوتو بزرگ بعد به حضرت ابراهیم میگن ا انت او گوش ا انت فعلت به یا ابراهیم ا انت فعلت خوازا به الحتنا یا ابراهیم آیا یا تو این کارها رو کردی با خدایان ما ابراهیم؟ قصدشون چی بود از این؟ قصدش این بود که بفهمن ابراهیم این کار کرده یا نکرده؟ پس شوی استفهام حقیقی نبود چون اگه استفهام حقیقی بود حضرت ابراهیم گفتیم بزرگه با اینا دعوا شد زد همه رو خورد کرد قبول نکردن که اونها میخواستن ابراهیم اعتراف کرد. لذا وقتی اعترافم نکرد آه؟ و دو قهلو بهشون جواب داد باز انداختنش دو آتش پس قصدشون اقرار گرفتن بود که او بگه انا فعل تو هازا به آلحت کن یا امرار بگه انا تو به آلحت کن اینو باید میگفتن دیگه قصدشونی بود که به این اقرار کن اینو میگن استفهام تقریری من مثال زدم دیگه مثالش چی شد؟ ا انت فعلت به بالهت نو یا ابراهیم استفهامه استفامه بگید. تبرری، دنیا قصدشون اقرار گرفتن بود. ا انت فعلت هذا بالهت یا یا گفتیم تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که متکلم میگه به ما بعد ادات استفهام متکلم به مخاطب میگه اقرار کن مثل قاضی تو دادگاه میگه آیا شما بودید که از دیوار فلانی بالا رفتید؟ قصدش اینی که اون تو دادگاه بلند شد بگه بله من بودم از دیوار رفتم بود این استفهام تقریریه یعنی وادار به اقلاق شد اینجا این مثالی که کتاب ما زده این مثال استفهام تغریری نیست چون اصلا نمیخواد آقای بهتوری به خلیفه بگه تو اقرار کن به اینکه من نیستم بخشنده ترین نیستم پاکترین نیستم اینکه میشه حجم بد مگه میاد شاعر از خلیفه خودش اقرار بگیره تو اقرار کن که من نیستم داریم من نیستم بخشنده داریم. پس این چیه علست و اینجا این مثال مال اون استفهام در معنای نفیه مثال در معنای نفیه استفهام که نفیه در نف میشه اثبات تاکیدش بیشتره تأکیدش چیه مشتر. مثل مثلا اگه خدا میگه الستو برات بگو. الیس الله به احکم الحاکمین. الیس الله به احکم الحاکمین یعنی اللهو اهکم الحاکمین، قطعاً قطعاً. قطعا. نفیه در نفی میشه چی؟ اثبات. این الستعمم نميخواد اقرار بگیره از مخاطب. مخاطب و وادار کنه به اقرار خلیفه زمان بده. بعدم اقرار کنه به لستو بگه لستو احمه هم این نیستش که بلکه قصدش اینه بگه انت اعمهم هم میتونسته بگه انت اعمهم بودن و از کاهم بودن و امزاه هم حسامن اگر گفته بود انت اعمهم هم تأکید الست احمه هم رو نداشت پس مثالش مثال استفقام در معنای نفعه که دفعه در نفعه میشه اثبات. مثل علیس الله و احکمه حاکمی علیس از صبح و غریب یعنی از صبح و غریب اون خب این مثال به اما برای استفهام تغریری چه مثالی بزنیم؟ من مثال زدم که اعن تفعل دهازا به آلهتنا یا ابراهیم. اَاَنْتَ فَعَلْتَ هَاسَا بِ آلِحَتِنَا یا ابراهیم خب نگاه کنید مثال چهارم رو ببینیم مثال چهارمشی قال آخر شاعر دیگری گفته الامه الامه یعنی ما چون مای استفامیه اگه حرف جر بر سرش در بیاد علفش میفته بخاطر اینکه فرق باشه بین مای استفامیه و غیه ما. درستو میگه الا خلفو بینکم الا یه اعلامای دوم الا بوده اشبار شده شده الا ما الا تاکید این علامهای اوله الا ما الخلفو بینکم تا چه تا چه این اختلاف بین شما الخلف خلف یعنی اختلاف اسم سر اختلاف این اختلاف و این تو سر همدیگه زدن این بگو مگو کردن علامه تا چه وقت م? یعنی تا کی میخواد این اختلاف بین شما باشه. تا کجا تا چقدر این اختلاف بین شما باشه. و هاز زجت الکبرا الامه یعنی علامه حاضر زت جهاز زت جتول کبرا علامه و این داد و بیداد ز یعنی داد و بیداد این داد و بیداد بلند این همه داد و بیداد علامه بر چی برای چی انقدر داد و بیداد بر سر چی چیزی همه داد و بیداد میکنید تا چه وقت این اختلاف میخواد بین شما باشه اینو کی گفته شاعر گفته به کی به مخاطبین خب مخاطبین چیکار میکردن با هم درگیر بودن داد بیداد گیری اختلاف شدید گفته این بگو مگو این داد و بیداد تا چه وقت در سر چی مثل که یکی میبینه دو نفر دارن با هم دیگه داد و بیداد و دعوا میکنه یا آقا تا چه میخواید مثل موش و گربه تو سر کله همدیگه بزنید؟ تا چه میخواید مثل سگ و گربه یقه هم بگیرید تا چه وقتی این اختلاف بینتون باشه این همه داد و بیداد بر سر چی اینجا استفهام برای چیه استفخان انکار توبیخیه یعنی این اختلاف نباید بین شما باشه این همه داد و بیداد نباید باشه ما بعد مابعد ادات استفاق واقع شده و فائل اون مورد توبیخه داره توبیخشون میکنه چرا اینقدر اختلاف دارید؟ چرا اینقدر داد و بیداد میکنه؟ انکار توبیخی درست شد؟ یعنی این اختلاف و سر صدا نباید باشه حالا که هست توبیخ میشه حالا یه مثال بزنم از قران حضرت ابراهیم به قوم خودش اینطور گفت گفت اتعبدون ااتعبدون ما تنهتون اتعبدون ما تنهتون تا تعبدون ماتنحتون آیا شما عبادت میکنید همونیرو که خودتون میتراشید یعنی تا الان داشتی سیخ تو چشمش میکردی می میتراشیدی حالا که شکل مجسمه پیدا کرد شد خدا میپرستی آیا شما عبادت میکنید همونیرو که خودتون میتراشید حالا آیا اون قوم تعبدون ما تنهتون بودن یا نه؟ بله عبادت میکردن همونایی که میتوشدن ولی از نظر ابراهیم این فعل واقع شده از اونها و فائل از نظر ابراهیم مورد توبیخ ملامت اتعبدون ما تنهتون الامل خلفو و الاما و حاظ زجت و کبرا علا ما نگاه کنید دیگه شما تقریبا فهمیدید توی قاعده میگه قد تخرج و قد تخرج و معنای مجازی نیاز به قرینه داره گاه درست شد؟ قد تخرج و الفاظ و عن ان معانی ها گاهی خارج میشه الفاظ استفهام از معانی اصلیش که همون طلب فهم قبل از اینکه متکلم بدونه طلب میکنه که بفهم نه معانی اخرى خارج میشه به معانی دیگری تصفاد من سیاق الكلام و قرائن الاحوال و قرائن الاحوان. که این میشه از سیاق کلام و قرائن احوال چند نقل مثال زد ولی انکار که گفتیم منظورش انکار ابتالیه و تقریر که توضیح دادیم وادار به اقرار کردن و توبیخ که گفتیم انکار توبیخی نگاه کنید متن فیما عرف تفیما مزا الفاظ الاستفهام و معانی ها الحقیقیته الفاظ استفهام و معانی حقیقی اون رو شناخت و حنا نريد ان نبينا لك ان هذه الالفاظ قد تخرج الى معان اخرى تستفاد من السياق و قرائن الاحوال به معانی دیگری خارج میشه که از سیاق و قرائن احوال نمیشه تدبل تدبر الامثله المتتابعه تجد البحريه في المثال الاول لا يسأل عن شيء استفان حقیقی نیست و انما یورید و هن یقولم مده و الا داد روزگار نیست مگر سختی سرعان ما تنجری این ما مای مستری هست یعنی سرعان انجلاؤها سرعان اسم فعله یعنی اصره سرع شدتی که سرع انجلاؤها خیلی سریع است باز شدنش و ما هو الا زیغون و نیست مگر تنگنایی که یعقوب و هو فرج به دنبالش گشایش مید فلفظت و حرفی کلامی انما اینما جا جاعد لنفل لال طلب علم بشه اینکانمش خولت نه نخواست چیزی رو بپرسه که نمیدونسته بلکه برای نفل آمد و عبود تیه فلم سال ثانی یونی که رو دا ادا ارتیاب خون انکار میکنه که دشمنان شک داشته باشن ای اولا کافوره در بلند مرتبگی کافور یون که را علاله ارتیاب خون ول کماسه خون ادفعه به جای ارتیابه و انکار میکنه التماس اونها رو طلب اونها رو البراهی نه مفعول التماس این که اونها التماس کنن طلب کنن براهین رو علا ما کتبه الله لهو من النصر و اختسته هو بهی من الجد مرهان بخوان بر آنچه که خدا نوشته است برای این کافور که عبارت باشه از پیروزی وقت هو بهی و او رو مختص به این کرده به این پیروزی اون چه که مختصش کرده بهش چیه؟ این وقت هو اتوجه کتبه الله له. آنچه خدا بر او نوشته پیروزی است و آنچه اختصاص داده به او عبارت است از بخت بلند هلچت دستهی من دست زید. بعد ان او، اصلا دنبال نیستند که طلب کنن برهان بعد ان راو کیفه یتردوا فی مهالک کل من اراد بهی شر را. بعد از این که دیدند چگونه هلاک میشه دا یعنی یهلک فی مهالک در میدانهای های جنگ کل من اراده به شر لو هر کسی اراده شر کند به کافور چطور در میدان جنگ اببه میگه و کیفه یوسیب و زمان و کل من نواله سو و, و چگونه روزگار دوشار سو و بلا میکنه هر کسی رو که نیت کند نسبت به کافور سوی رو دوشار بدبختی میکنه هر کسی که نسبت به اون نظر بدی داشته. فلی استفخام و فلبیت لای و فیدم معنی سوال انکار الکتاری هیچ معنایی نداره جز انکار یک مثال سوم گفتیم که تقریر مثالش درست نیست مثالش رو ما مثال زدیم الهول بنات و لکمول مثالش رو زدیم که انت فعلت هازا به آلحتنا یا ابراد اما برای این استعفاام این کار ابتالی مثال زدیم عقل بناد بلکو م. و بهتای سالس ان ما یوری و این یحمله یعنی وادار کنه. متکلم خود وادار کنه ممدوح رو بر اینکه اقرار کنه به ما ادعا و لهو با آنچه که برای ادعا کرده. من الفوق علا، بقیه خلفا فلجود و بستت جسم و شجاع قلطه که بخواد او رو وادار کنه بر این که ادعا کنه به اینکه من بالاترم از همه خلفای دیگه در کرم و بستت جسم قدرت بدنی و شجاعت بعد تازه اگر بگیم تغریره باید اقرار کنه به لستو چون گفتیم میگه به ما بعد عداد استفخان اقرار کن خوب. اینجا باید لور را کن ویس من قصدی ینی از الله پس بله قصد سوال نیست. اما معنا اینجا این نیست بلکه معنا نفیه و نفیه در نف استفه. مثل عیص الله و احکمل حاکمین. عیص الله و به احکمل حاکمین این مثال عص الله به احکمل حاکمین یعنی الله و احکمل حاکمین انقدر انقدر انقد. علیس از صبح و به غریب. آیا صبح نزدیک نیست؟ آیا پیروزی نزدیک نیست؟ یعنی از صبح و غریب آن جدا جدا جدا این استفهام در معنای نفیه و استفهام در کلام برای تقریر نیست برای تقریر ما چه مثال سدیم؟ اعنت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم اما مثال چهارم و شاعر في مثال رابعه یلوم و مخاطبیه مورد ملامت قرار میده مخاطبین رو علا تمادی هم اصرارشون علا تمادی همف شقاق این که اونها اصرار دارن در دوگانگی و استمرار همف تخاظل و تنافر و اینکه استمرار میدن تخاظل یعنی همدیگر رو یاری نکردن و تنافر و از همدیگه نفرت داشتن و و, هم و, زجیج و اونها رو میکوبه بر گلافشون و اونها رو میکوبه بر گلافی که دارند در سخب و زجیج سخب یعنی سر و صدا زجیج یعنی داد و بیداد اونها رو دارست میکوبه به اینکه چرا انقدر سر و صدا و داد و بیداد صاحو وقت خرج به ادات استفهام عن معنا هم ان, معناها ان معناها پس او ادات استفهام بو خارج کرده از معنای اصلیش ال توبیخ و تقدیر به توبیخ و تقدیر که گفتیم بهش میگن انکار توبیخی انکار یعنی نباز همچی چیزی میشده ولی شده به خاطر همینم توبیخ میکنیم مثالش هم زدیم مثل ات عبدون ما تنحتون اتعبدونه ما تنهتونه یعنی آیا شما عبادت میکنین همونیت خودتون میتراشیدید حالا اونها عبادت میکردن یا نه؟ بله و ابراهیم داره اونها رو به این خاطر توبیخ میکنه بریم مثال بعد مثال بعد استفهام به معنای تعظیمه استفهامه به معنای تعظیم و این خیلی زیاد استفاده می شو. خود ما مثلا شما 21 ماه مبارک رمضان میرید احیاق میبینید اون گوینده میگه کیست که دیگر در خانه یتیمان شبانه غذا ببرد کیست که دیگر در نخلستانهای کوفه شبها شب زنده کنه. کند کیست که در خیبر را بلند کند این سوالاتش برای نیست که شما بگید علی علی بلکه با این کیست کیست کیست, کیست که داره میگه ها چه کسیست که دیگه در خیبر بلند کنه؟ کیست که دیگه قضا در خانه یتیمان در شبانگام ببره این کیست؟ کیست؟ برای تعظیم همین میفهمن داره همین رو المومنی رو تعظیم میکنه درست شد؟ و ما خیلی زیاد اینطوری استفاده میکنیم مثلا میگه من زل نزی الله قرزن حسنن کیه که به خدا قرض بده؟ این داره اون کسی رو که به خدا قرض بده یعنی قرض حسنه به مردم بده داره چکارش میکنه؟ داره تعظیم نگاه کنید قال او طیب فرسا عبو طیب در مرسیه ی کسی گفته مرسیه ی شخصی مرده بوده گفته من للمحافل والجحافل و فقدت به فقد که نیرن لایت رو من للمحافل والجحافل و میگه کیست برای محافل یعنی محفل گردانی کنه کیست که دیگه مجالس رو بگردانه ول جحافل جمع جحفل لشکر کیست که لشکرها رو بگردانه و سرا یعنی شب حرکت کردن و شبیر خون زدن کیست که دیگر مجالس را اداره کند کیست که دیگر لشکریان را رهبری کند کیست که دیگر شبیخونها را ایجاد کنید کیست یعنی این آدم بود دیگر هم کسی نیست این کیست که محفل بگرداند کیست که لشکر بچرخاند کیست که شبیخون بزند اینجا علامت سوال بعد از این وسرا خب این برای تعظیم دیگه یعنی اون کسی که این کارا رو میکرده و الان نیست داره بعد میگه فقطت به فرقدکن نایرن لایت رو فقطت این محافل و جهافل و سرا اینها از دست دادن به فرقدک با از دست دادنشون ترا نایرن یک ستاره ای رو که لا یک لو. یک ستاره درخشانی رو از دست دادن که هیچ وقت دیگه تلو نمی کن. اینها با از دست دادنشون را از دست دادن ستاره ای رو که هیچ وقت تو نمی کن کسی رو از دست دادن که دیگه مانندشو نخواهندی خب همین مثال بود همین شاهد مثال اگر این بیت دوم رو همینطور برای خاطر معنا مثال زده باشه خب خوب کتاب ولی اگر این رو هم فکر کرده که من اینجا هم برای تعظیم وست و غیره این غلطه چون این من من شرطیه است و اصلا من استخامیه نیست میگم من اتخذ علی از زیوف تمام اون کسانی رو که تو قرار دادی اون کسی که مرده که تعظیمش کرد گفت کیست که این محفلگردان محفلگردانی و لشکرگردانی کنه میگه من یعنی الذین اتخذت علی الزویفه خلیفه تمام کسانی رو که تو قرار دادی بر میهمانان خلیفه ها گفتی هر کسی که آه میهمان وارد میشه اینا خلیفه اینا جانشین من یعنی تمام کریمانی که تو خلیفه خود گذاشتی بر میهمانان زا او این جواب شرط اون من اتخسته یعنی هر کسی رو قرار دادی جلته اون من مفعول اول اتخسته است مقدم شد شون عدد شرط خلیفتا علا زیوف این خلیفتن مقول دومه علازویوف متعلق به خلیفه یعنی من اتخذت خلیفتن علازویوف کسانی رو که تو قرار دادی هر کسی رو که تو قرار دادی خلیفه بر میهمانان جانشین خود ساختی بر میهمانان همشون تباه شدن همشون به اوت زدن همهشون واموندن و مثل لا آیکاد و زیرا مثل تو تباه نمیشه مثل تو که بن نمی‌دوی ایناشون مثل تو نبودن لذا همشون وا دادند همشون آب تمام اون کسانی رو که تو جانشین خود کردی در کرم که به میهمانان کرم کنن همشون فل معطلان زو همه تباه شدن. زیرا, کل زیرا مثل کلایکادوی زیرا مثل تو که زایه نمی و اینایش بدون مثل تو نبود خب این بیت دوم شاهد نداره فقط اون من محافل هستش که من استفا... منه برای تعظیم نگاه کنید توی مدر و شاعر و فلم رابعه گفتیم این رو درست شد و عبد تایی فلم سال خامس یقصد علت تعظیم و اجلال به اظهار ماکان دل مرسی. بین که داره اظهار میکنه آنچه که برای مرسی یعنی شخصی که رساش میکرده بوده ایام حیاتی منصفات سیادت و شجاعت ود کرد اونچه که برای او بوده که این داره متش میکنه چیه از صفات سیادت و شجاعت رو کرد ما ما که من ما فیزالکم این اظهار تحصر و تفجیل البته کل بیتم مرسی از توش اظهار تحصر و تفجیل درد کشیدن هم حسرت و دردم توشید خب این, مال این که برای تعظیمه و ما داریم و قال یهجو کافوره شیشمی میگه گفته که متنبی و مورد حج و قرار داده آقای کافور اینجا استفهام برای تحقیره برای حقیر کردن مخاطب استفهام برای این نیستش که سوال کنه و بخواد بفهمه برای تحقیر کردنه حالا بخونیم ببینیم کدومه شد و گال یهجو کافره منعیت تراغ یعتی مثل کل کرمون. ببینید این منعیت تراغ یه استفهام اون عینل مهاجم و یا کافور والجلم و اونم یه استفهامه این یکیش برای تحقیره کدوم نگاه کنید این آقای کافور اخشیدی یه غلام بود اخشید پادشاه مصر اونو خرید ولی چون این آدم توانمندی بود جای اخشید نشست و به قول خودمون جای اخشید نشست و دختر اخشید رو هم گرفت و شد ولی این آقای کافور قبل از اینکه اخشید بخرتش غلام یه نفری بود که توی حمام کار میکرد هجامت میکرد و دللاکی میکرد بدترین شغل در نزد عربها همین حجامه کسی که کار حجامت میکنه داخل همام این کار رو اونها دللاک ها میکرد این شغل خیلی شغل پستیه نزد عرب ها کالا اگر یه کسی مثلا غلام یه زرگری باشه خب این غلام ارزش داره اما یه ما غلام یه للا که او باشه خب خیلی دیگه پست. بعد از اینکه اخشید با قول خودمون اینو خرید و این جانشین او شد حالا که خلیفه هستش متنبی داره او رو تحقیر میکنه به اون شغل قبلش که عبد یک حجام بود بهش میگه منعیت تراک از کدامین این راه ها یعتی می آید مثل که یعنی الامثلکه به سوی تو الکرم و شرم و بزرگی و آ بخشندگی از کدام راه به طرف تو بیاد مثلا نجادت نجاد برتره تربیت شده یه مثلا استاد برتری هستی؟ در محله خیلی خوبی بزرگ شدی؟ مولای تو قلام یک کسی بودی که مثل قنبرک و مولاش امیر الممنه. از از راهی کرم و بزرگی سراغ تو بیاد این یک استفاد بعد گفته حالا آی کافور ایلال مهاجمو یا کافور ول و مهاجم جمع مهجمه است یعنی اون کاسه ای که توش خون و اون فضولات هجامت رو می ریفتن. اون پیاله هجامت مهاجم جمع مهجمه جلم اون تیغ مثل قیچی که یه دمش تیغه این چنینی بوده که برای هجامت بکار نبود خب گفته راستی آی کافور اون پیاله های هجامت و اون تیغه هجامت چی شد؟ اون کجاست؟ حالا اینکه که سوال کنه که اون پیاله های هجامت یا اون تیغه هجامت کجاشون بگی مثلا تو حمام خیابان فلان قاهر است. خب قصدشون دیگه اینجا تحقیره با دو دو که الان خلیفه شدی راستی اون پیاله های هجامت و اون تیره هجامت و کارش کردیم اما اون منعیت نعیت اگر گفتید استفرانش چید اون برای تحقیر نیست تحقیر تو این عین مهاجم و یا کافر ول اون استفهامش برای چیه؟ اونم مجلسیه نمیخواسته که سؤال کنه از چراهی برای تو کرم میرسد که او بگی از این راه چه شد؟ استفام در منعیت تراغ معلاش چیه از این معانی مجز عین المهاجم که من عطی کردم برای تحقیر چون داره نسبت به شغل قبل تحقیرش میکن میگه المهاجم جمع مهجمه و هیه القارورتو یه جمع به ها الجلد شیشه یه که توش پوست داریم خون و اینجور چیزای هجامتو توش جمع و یوغالو لها و یوغالو لها که اصول هجامه بهش که اصول هجامه الجلم اهد و شقه المقراز یکی از اون دو طرف قیچی والمرادو بهی المشرات اینجا منصورش مشراته مشرات مشرته تیغ جرال ان نکافور کانه عبدن لحجامن به مصر گفته شده که کافور عبدالغلام یک اجامتگری بوده در مثل سمه اشتراه و لقشید منعیت تراخ هم استفهانش در معنای نفیه یعنی راهی نیست که کرم سراغ تو بیاد کاف؟ راهی برای رسیدن کرم به تو نیست از کدوم راه کرم به تو بیاد یعنی هیچ راهی وجود نداره بعد گفته راستی بگو ببینیم اون کاسه و پیاله ها و تیغه اجامت کو؟ کجاست؟ تحقیل فعبدتایی فلم سال خامس یفصده الاد تعظیم که گفتیم درست شد و اینجا برای و هم با فلم سادسه حیسو یهجو کافورن و انهو ینقصهو او رو کوچیکش میکنه و یعن دو الاد تحقیره و قصد داره رو تحقیر کنه و الحد تمن کرامته و از کرامته او بکن. این مثال هفتم مثال هفتم برای استبتاق استبتاق یعنی کنشو مردن کنشو مردن یعنی دیر شد کنشو و خودمون نمیده به کار مثلا فرض کنید شما کلاس دارید ساعت هشت ده دقیقه به هشت میاد دم در خونه یک دوستتون که بیاد با هم بدید زنگ میزدید میگه اومد وای میستید ده دقیقه میشه نزدیک ساعت هشت نمیاد شما برمیاد به اون دوستتون بگید. پس این کهی میاد آیا پس این کهی میادی که شما سوال کردید آیا منظورتون اینه که اون توضیح بده بگه سه دقیقه بند پنج دقیقه بند استفهان کردی برای که بفهمید یا منظورت اینی که با دیر شد کلاس از دست رفت قرآن داره که خدا به رسولش و یاران او گفتش من شما رو یاری میکنم بعد یاری خدا طول کشید یه زر زلزلو قرآن میگه زلزلو اینا متزلزل شدن متردد شدن زلزلو حتی یقول الرسول تا جایی که رسول خدا وقتی دیدینا متردد شدن تو اینکه خدا یاری میکنه پاشون لفظید حتی یقول الرسول متان اسر الله از یاری خدا کی از کی میشه یاری خدا یعنی یاری خدا یه کمی دیر شده آه اینو ما خودمونم هم به کار میبریم پس کی میاد اینو نگاه کنید و قال عیزن. حتی من این توی یه کاروانی بوده کاروان در شب حرکت میکردند و بر اساس ستاره ها و علائم نجومی که تو آسمان بوده حرکت میکردند چون بیابون بوده با همه ریکزار شطرها را حرکت میدادند شبها می روز که خب گرم بوده امکان رفتن نبوده شبها حرکت می‌کردند. بعد شبها که حرکت می‌کردند براساس بر اساس این علائم نجوم ستاره‌ها راه می رفتن. حالا یه شخصی از این کاروان اینطور میگه حتی ما یعنی تا چه وقت حتی ما بوده ها یعنی الاما حتی ما نحنو نصاری سرا یعنی شب پیمایی کردن سارا یوساری مسارات یعنی با هم شب پیمایی کردن تا کی ما شب پیمایی کنیم با این ستارگان ان ظلم در این تاریکی ها هرچی ما میریم این ستاره ها بالای سرمون دارن میان تا کی ما با این ستاره ها باید را بریم ترجمش میشه تا چه وقت ما با این ستاره ها را بریم و ما سراه و و و حالی ما سراه و علا خوفن و قدم. و حالانکه که راه رفتن این ستاره ها رو میخوره به نجم تا کی ما دنبال این ستاره بریم؟ نه. در حالی که این ستاره حرکتش نه بر خوفه خف پای شطور نه شطور سوار است ولا قدم نه پیاد است قدم پای انسان خف پای شطور این ستاره داره تو آسمون حرکت میکنه نه مثل شطوران ما خف دارد و نه مثل ما پا دارد آه. تا کی ما باید با این حرکت کنیم این که خسته نمیشه اینکه مثل شتوران ما و مثل خود ما پا و قدم ندارد که از پا بیفته تا کی ما باید دنبال این بریم یعنی تموم نمیشه همین داره ادامه پیدا میکنه استبطاق کند شمردن اینکه خیلی کنده ما به مقصدمون نرسیدیم تا کی ما باید دنبال این ستاره بریم در حالی که این ستاره نه بر روی خف پای شطور حرکت میکنه و نه بر روی قدم پای انسان نصاری من از سرا و خوبه مشی و لیل حرکت کردن در شب یقولو حتی متا یعنی حتی من تا چه وقت نصری مع نجم فی تا که ما حرکت کنیم با این ستاره در شب و هوه و حالان که او لا یسری علا خوف نیم. او حرکت نمیکنه کنه بر خوف یعنی سمت کل و لا علا قدم کنلاس فلایت ابو مثلنا و مثل متایان پس او مثل ما و مثل چهار پایانه ما خسته نمیشه تا که ما دنبال اون را بریم استبتاق گفتم مثل اینکه؟ قرآن میگه زلزلو حتی یقول الرسول رسولو متانس رو باخ متزلزل شدن تا جایی که رسول خدا گفت متانس رو الله یاری خدا چه وقت ها یعنی یاری خدا دیگه شدینا دارن از دست میرن گفتم مثل این که شما در خونه دوستتون بگید تا کی ما باید اینجا بایستیم پس این کی میاد یعنی اومدنش بگید دیش. استفدام یکی دیگه از معانی استفهام تعجب تعجب باید زیاده مثلا تو قرآن میگن کیفن او کلمو من کانف المهد صدیگه حضرت مریم گفت حضرت مریم گفت با خود این بچه که توی گهواره صحبت کنید گفت کیف وکل من منکانه گفتن کیف وک من کان فل ما چگونه حرف بزنیم با این بچه که تو گهوار است؟ ما با بچه که توی گهوار چطور حرف بزنیم؟ تحجب... ای بابا چجوری ما با بچه که تو گهوار صحبت کنیم. کیفه برای تعجب به کار. اینجا الان نگاه کنید. این شعر رو من، اول ترم قبل براتون توی مقدمه کتاب خوندم یه فسیده ای بود که ایشون تبع نوبه رو داشت به شکل غزل بیان میکرد که پنشش بیت بود اون مقدمه کتاب براتون خوندم حالا برمیگرده به نو نوبه خطاب میکنه میگه اب در این ا همزه نداست این استفهام نیست ای دختر روزگار یعنی ای تب روزگار مایه بدبختیه تب یکی از اون بدبختیه شد چون هماموان نصبش تعبیر کرده بنت ای دختر روزگار ای زاده روزگار ای تب اندی کلو بنتن. من خودم هر نوع معشوقهی داشتم یعنی منظورش هر نوع مصیبتی چون بین تو اینجا به عنوان مصیبت آورد است من هر بدبختی که تو فکر کنی پیشم هست همه رو بدبختی دارم برای بنابراین چیف و سلطه من از زهامی تو از بین همه این بدبختی ها تو جوری اومده یقی منه بگیری تحجب میکنم تو چطورتون رسی این همه بدبختی بیای تو یقی منو بگیری تو دیگه کجا کجا سرکلت پیدا شد تعجب میکنم چگونه تو رسیدی به من از بین ازدهام این همه بنتی که دور من بود این همه مسیبتی که با من بود پایین میگه یوریدو به بنت در الهم ما علتی و اون طبیه که دوشارش شده بود و بنات در شدائد و, و مسایب بنات در شدائد و مسایب روزگار. یغول لهم ما اندی کل نوع من انواع شاهد من همه نوع بد رو خودم دارم. فکییفهیم یم نکه پس چجوری تو رو مانعه نشدند؟ ازده من الوصول وصوله چجوری چجری ازدهام این همه بعد مانع نشد از رسیدن تو به من توطور تو تونستی از وسط همه اونها بیای و یقه من رو بگید بگید چ تو تونست این کارو کنی؟ کیفه برای تعجبه گفتم مثل کیفه نکلم و منکان و فلمهده سمید این مثال نه کلن غلطه کلن غلطه یعنی اصلا ما چیزی به اسم تصویه برای همزه استفهام یا برای استفهام نداریم شما میگه این برای تصویه است و اصلا ما همچین چیزی نمیگه اصلا استفهام نیست همزه، گوش کنید، ام متصله و ام عاطفه و ام معادله که ستا یکی ها متصله، آتفه، معادله که حرف عطفه این ام بعد از دو تا همزه میاد یکی شد تو همین کتاب تو بحث همزه خوندیم، همزه تصورت یکیش بعد از همزه تصور میدید. درست شد؟ مثل اه انتوم اشد دو ام سماه اه انتوم اشد دو ام سماه سماه اد شده به این همزه همزه امش هم همه متصله عاطفه معادله است. یه عم آتفه دیگه هم داریم که بعد از همزه تصویه میاد. همزه تصبیه همزیه که ما بعدش به مستر میره یه که ما بعدش تعویل به مستر میره, میره. امم ام متصله و عاطفه است این دو جا ام متصله عاطفه و حرف عطف معادل است بقیه غیر از این دو جا بقیه جاها ام منقطه است به معنای بل خب امم یاد گرفت حالا این همزه تصویه درست شد هیچ ربطی به اون همزه استفخام نداره از این هم نیست اگه استفخام بود صدارت داشت الان نگاه کنید سوا اون علینا او و از تا تکن من الواقع سوا اون علیهم ام املم تنزرهم لا یؤمنون خلاص شد. این سواون خبر مقدم علینا متعلق به سوا این اوازته میشه, ایانا. اون اون اون میشه یعنی و از دکه علینا سواون علینا و از به مستر ماستار اون و از میشه مبتدا دوی ماه تکن من الوازین یعنی و عدم و و عدم كونكه و, و الوائذ این هیچ ربطی به این اگر حمزه استفهام بود هیچ موقع بگید مؤخر واقع نمی شد. و واسن این جمله استفهامی توش نیست نه حقیقی نه مجازی هیچ واسن جای سوال نداره داره خبر میده جمله خبری میگه مساویس بر ما نصیحت بکنی یا نکنی هیچ ربطی به استفهام نداره نه گلت از تصویر اصلا جز معانی استفهام نیست و اصلا جملش هم استفهام نیست حمزش هم استفهام نیست به اینکه حمزش تحویل به مستر میره و اگه استفهام بود، صدارت داشت اصلا خبر اون مقدم نمی شد مثل سباون علیه هم انذرد حالا شاید به خاطر اینکه ام متصله دو جا میاد یکی بعد از همزه استفهام میاد مثل انت و مشد و خلقن ام سماه یکی هم بعد از همزه تصویه فکره این همزه هم همزه استفخان بود و الا صحیح نیست این هم نو چه قلط هست رو گذاشتونیش ده ده نگاه کنید اینجا حل استفهام به معنای تمنیه تمنیه یعنی طلب عمر غیر ممکن محال میشه که یه نفری نگاه کنه حالا یه دو میلیون تومن پولم هم نداره یه نگاه کنه یه ماشین ددواز زمینه یه افتی رو که آیا میشه ما میام چی چیز رو آیا میشه اون بغلیش میگه آرزوه آرزو یه بنده آرزو جوان میفهمه که این آرزو آیا میشه حالا چرا استفام برد به کار برده چرا نبه کاشمام گ هم داشته؟ چ وقتی با آرزو میگه با استفام میگه یعنی اونو داره به شکل شدنی نشون میده. به خاطر شدت علاقش اونو به شکل شدنی نشون میده به همین دلیل استفام استفاده میکنه و خود لعیتر رو نمیاره به همین دلیل نمیگه که ای کاشم هم میم چینشی داشتهه. یا آیا میشه؟ این داره نوابیت نشون میده، نمیخواد بگه من آرزو کردم درست شد؟ جهنمی ها توی جهنم می‌بینن که یه عده از این اهل جهنم شفاعت شامل حالشون میشه حالا ممکنه از این مؤمنین مسلمانانی باشن که که میبادارم کار و عملشون اشکال داشته خداوند جهنم نگهشون داشته تمدیش شدن حالا شفاعت قرآن شفاعت عیمه معصومین شفاعت نبی گرامی اسلام شامل حالشون میشه میاند از بهش جهنم بیرون جهنمیای دیگه اونهایی که وضعشون خیلی خرابه اونا میگن فحلنا لنا من شفا این من است یعنی فهل لنا آیا ما هم پارتی داریم شفیانی داریم و فهول لنا تا شفاعت کنن برای ما این یش الان نبینید منصوب شده بعد از فاد در جواب طلب یعنی تمنی میگن آیا میشه یک کسانی پیدا بشن از ما شفاعت کنن آ. آیا میشه انقدر اشتیاق داشتند که از جهنم بیرون بیان به جایی که بگن لی تلنا من شفا آ. لی تلنا شفا آ. فیش لنا گفتن حلنا استفهام در معنای تمنیه طلب امر مهار دلیلش هم اوست که منصوب شده به عن مقدره فعل مزاره بعد از در جواب طلب منصوب میشه به ان مهار. آخریش هم تشویقه اینو دیدوید زیاد میشه شما میرید به یه نفری مثلا یه خبر خوبی بدید میگید آیا یه خبر خوب بدهد بده؟ تا قبل از اینکه اون بگه بگو یا نگو خودت میگی اینکه گفتی آیا یه خبر خوب بد بدم؟ قصدت چیه؟ قصد اینه که اونو تشکیش کنیدی یه سهنشو اشتیاق درش ایجاد کنیم. خدا هم تو قرآن همین کاره میکنه. میگه حل عدل لکم الا تجارت انتون جی کن به یه پیغمبر بگو حال عدل کن آیا راهنمایی کنم شما رو علا تجارتن بر یک تجارت و معاملهی که تنجی کن من عذاب علیم که شما رو از عذاب دردناک نجات بده یه معاملهی رو بهتون نشون بدم که شما رو نجات میده از عذاب دردناک قبل از اینکه اونها بگن بگو یا خودش میگه تو بالله و تو فی سبیل الله تو امنو بالله و تو فی سبیل الله یعنی به بالله و ولی قبل قبلش نیما دل همینطور میگه ایمان بیارید و جهاد کنید یه راهنمایی بهتون بدن به یه معامله ای که نجاتت توشه طرف همه حواسش جمع میشه میگه این برای تشویق اون ورتم که ما خودمون میگیم به یه نفر یه خبر خیلی خیلی خوب بده بدن اینکه بهش میگیم اونو گوشاشو تیز می کنیم برمیگردیم میگیم قبول شد. خوشو که از اول میدونن بریم بهش بگیم تو این قبول شدیم یعنی اونو گفتیم که شوقش زیاد بشه برای تصفیه تصویرم که گفتیم کلا غلطه. نموزج این درس بسیار بلنده درست شد و درس رو کلا درس استفهام رو دوره میکنه و استفهام تمام میشه. نموزجش رو میخوام نگاه دارم. شما هم مطالعه بحث استفهام رو میکنید برای انشالله جلسه آیندار حتما مطالعه کنید استفاده کنید از این مطالعه تا به دردتون میکره حتی تو, تو فهم عبارات و مقصودی که از افراد شما میشنه محفظه معییت باشید و سلام الله حالا نبی ناو آله تاهری و السلام علیکم و رحمت الله و